نظری مهمون دارین ممنونم سلام, سلام. خوبی؟ رنگ چه رنگ پریده از آخرین باری هم که دیدمت به هم بیخته تری چی شده نیچ راسیون بنفشه چی شد شکایتش به کجا رسید بالاخره؟ پس من مطمئنم نه همش پرت و پلا بوده این دنبال پول بوده حتما بچه‌ها میگفتن خیلی پولکیه فلورج خیلی مظرت میخوا ولی من جایی بد برم اجاله دارم شندم کاربارتون خیلی گرفته آره بد نیست بی مادر صدفرما بود یا زنگ به من بزنی منم بیکارم این اما... اصلا یادم نواد ببخشید بیا بری من به خانه برادرم معرفییت کنم شاید کاری داشته باشه ببینید راست طرفا کنم از دو دوسته دوستای قدیمی من ادو شادی بس ما مانگر گذاشتی بابا چه لفتش میدی میگم این کار باید بشه دیگه این به نفر همه هست خیلی خب همین الان ردیفش کن به قاسم زنگ بزن آره خیالت راحت حتما پیش قاسم آمادم هم خبرشو بده خدافز آقا این دو تا هم هست. از وقتی که پژمان نیست کسی به اینام هم نرسیده. پسرکم خیلی گلوگی ها دوست داشت. این حالیت می آورد خودشون به شورشگی میجن. خدا رحمتشون کنه. آقا هم اگه تو رو نداشتم چه چه فایده نمیدونم تو درت چی میگذاره اینطلا بای کسی که دوستش دارم خیلی تنگ شده ولی کاریم نمیتونم بکنم دل دلتنگی بزرگترین درد عالمه این چیزی نمیخواد تو بذارش فقط آق روش بریز حسابدارمونه خانم جوان مردی سلام دکتر جام عالت چطوره پیدا کردی دست درد بکنه صبر کن یه پیدا کنم بذید ببینم یاتاش کنم بگو باشین بهتر من تو ماشین یه با باده تر پارت میکنم منم قاسم آقا چرا دست سر بر نمیداریی اگه در رو باز نکنی پیس خبر میکنه؟ چرا نه سرم را بر نمی‌داری؟ چون نمی‌دونم حرفایی که زدی راسته یا دروغه. برچه دروغی هم. چون همه زندگی من امروز کردی. نه همش حرفه. دلیل و مدرکی حرفت داری رو کن دلیل و مدرک. دلیل و مدرک. دلیل و من وجدان قوته من, من وجدانت راحته من از ماجرایی که تو تعریف کردی هیچ چی نمیدونم پس عذاب وجدانم ندارم شما یه بچه پنج ساله را یتیم کردی از اوجدا نداری؟ نه ندارم. ندارم. نمیشه که هر کسی از راه برسه، دیگرو رو متهم بکنه. من هر کسی نیستم. من پسر اون هم که سکس دادی کشتیش. خب منم گفتم ده تا فهمید گفتن. دلیل و مدرکی داری برای حرفت؟ برو کن. ای دلین و مدرک داشتم که میرفتم دادگاه. از موزه حرف می یا درو می بافی. تو سی فکر میکنی؟ همه این خودت ها؟ ببین من پجمال نکشتم تا اله با فکر کردی شاید اون بیچاره به توانه می که در حق ما کردی اونجوری مرد مزخرف اخرف نگمردک حقیقت ترخه ها فکر نمی کردی اونجوری تا آمان بدی نه <تصفح> نفس بکشین دو نفس عمیق بکشین من ببینم از عزیزینم گازاتون تا ببینیم چطوریه وضعیت طرفاست شما طبیعی هستید متوجه مائل هستید براتون اکسیژن میارم واست بکنم خیلی ممنونم بابا حال من خوبه اون جوون برسید اتازه این بعد تو یکسریم از شما تحت اون دوبار قرار بگیم نمیکنم شما وضعیت نباری بکنم اپنی سوستگیش شدید باشه بلیوهات آسید دیده باشه برد بگیم دیمارستان خوب پیشم شما رو فهم ملتر برست دربت نخوری برد بگیم بریم من نمیم دیمارستان کجا بودی؟ من تو ماشین بوده اصلا نفر دارم خورت کمون بریم خونه خورت بریم خونه نه نه نه نه بریم خونه خونه آدم بهتره میفهمم که آدم بهتره میخوام برا خونه جناب دکتر بعد اجازه ترخیص بده همین همینطوری در خود نمیتونین هاشیم برید حزیرامو پرداخت نکن کجا حساب دارین اینا پرداخت بدون برگه ترخیص نمیتونید خانوم من نمیخوام اینجا بمونم زوره مگه چی شده اجازه پاشو داره میره آقا بدون هماهنگی هماهنگی چی آقا گفت پول گفتن پرداختو این آقا, آقا اصلا مشکوکه چی میگی خانم مشکوتش چیه؟ شما گفتی پول گفتم چاش فردا دوک میکنم. نه لازم نه. دست نو ما نه زنابا. چنان سرما بوده. آدم و دردی میشه. آدم و دردی میشه. آدم و دردی میشه. آدم و دردی میشه. آدم و دردی میشه. آدم و دردی میشه. آدم و دردی میشه. بایدن بیرم بیرم کدوم چی کار کنی خواهم برم ببینمش حالش خوبه از کجا میدونی تو که نرفتی ببینیش گوستم بید که فقط یکم دستاش سوخته بود با آرش ما ببینمش شادی خیلی خوب نه بیش زنی میزنم چی کار کنی من گوشی ببینم زنی بزنی شمارت نفته رو گوشیش بعدن درد سر میشه برات بعدم تو الان زنگ بزنیم اگه اونجا تو رو میده امش تخصیر منه نباید تکرار میکردم شادی جان تو کار درستی کردی قاسم باید با سامان حرف میزد به چه قیمتی این ماجرای یه اتفاق بود قاسم باید بالاخره میفهمید که کشته شدن پسرش هیچ ربطی به سامان نداره این کاری بودش که ما باید برای قاسم و سامان می‌کردیم. علا. سلام آرش. سلام آقا. ببخش موز شدم. بیدارت کرده. نغاچه موضوع امتی جانم بفرم موضوع مهمی پیش اومده که مجبور شدم بهت زنگ بزنم چیزی شده؟ آره سامان گرفتن که؟ دیشت شما که گفتین لش نمیدیم بازم من لش ندادم خودش خواست از بیمارستان فرار کنه بهش مشکور شدم به پلیس زنگ جدن من نخواستم خواهش کنم بیای منو به رسولی آگاهی. باشه چشمگر چشم میام. چشم خیلی ممنون. تو میزنرمش آقایی خیراری پس چون میخواستی انتقام بگیری دوباره برگشتی به ماهی سراب و باهاش درگیر شدی بعدش هم پرتش کردی پایین درسته حسامشب برمگشته ماهی سراب. هیچ وقت باشون درگیر نشده. همین چند دقیقه پیش گفتی که به خاطر اون آتیش سوزیه بابات سکته کرده تصمیم گرفتی که انتقام تو بگیری. من انتقام اون گرفته بودم. با لو دادن رقم مزایده همین. کی باورش میشه؟ تو ما رفتی اونجا کار کردی اونم با اسم مستعار فقط میخواستی ماهای سرا را دستشون در بیاری ها؟ کافی بود برای من دیگه چی که میکردم؟ کافی بود ولی وقتی با اون آدم درگیر شدی به شدت اصبی بودی با چه ربطی داره؟ ربتش اینه که اگه انتقامتو گرفته بودی باش دعوانه میکردی باید به قول معروف خونک نشده بودی قرارم این برگشتیو نکشتم اشترامو منو باور نمیکنی خب اگه نکشته بودی چرا فرار کردی من, ترسیدم. من, من که ترسیدم برای اینکه همش براله منه برای که هیچ کی حرف منو باور نمیکنه آخه به خدا من نکشتمش منم شب خونم بودم شایدم داری رفیقم عدد شمار تلفنشو بنویس آقای جلوتره نه، شاهدم خوب نیست نمی‌تونه رانندگی کنه. چه شد؟ یخ کرد. فکر کنم فشار افتاده. چه بدبخت می لرزه. سرما خوردی؟ نه. شما تو گان سردیم کرده. چشاون سیاهی میره. من منتظر من هستم. خب، ابرا داره کمکم می‌کنه. وکر خودم بیرم آله لخش توش فکر میکردم بهتر میشه پسر جان چرا با من رو دربازتی میکنی؟ خوب اصلا نه میومدی؟ من با یه آجانس خودم میرسوندم فکرم بهترم حالا لوت کن وکر منو پیار بعدشم برو خوبه. نه فکرتونو بیارم بایه میسرم برگردن یکم میمونم شاید بهترشم از سامان افضلی یا همون امیر گودرزی برام خیلی عجیبه من فقط میخوام که حقی ناحق نشه پسر من کشته شده ولی ولی قاتلش سامان نیست چه حساب حرفا میزنیم حس میکنم من سن سالی ازم گذاشته آقا ها حالا پاید دنیا رو دیگه میفهم سامان مبلغ پیشنهادیه به رو تو لوداد و زهرش رو ریخت دیگه لازم نبود شب برگرده به ماهی سرا و با بچه درگیر میشه ببینید خیلی از قتل‌ها ها به خاطر عصبانیت و احساسات زود گذره. سامانم از حرفهای اون مرهوم و شده و دوباره برگشته به مای سرام من باش موقع حرف حرصدنم تو چشماش نگاه کردم اگه قتل بچم سامان نود می فهمیدم فکر کردیم به همین راحتیه زل بزنیم به چشهای طرف و بفهمیم که کار اون بوده یا نه این پسر جون من رو نجات داده میتونست این کارو نکنه فرار کنه بذاره بره ولی افت. دقیقا به همین خاطره که شما دارین ازش امایت میکنی من فکر میکنم شما درگیر اصلاساتتونین کار ما با مدرک و دلیل و شاهده سامانم یه شاهد داره ازش خواستیم که بیاد اینجا ممکنه اون خیلی چیزا رو عوض بکنه ولی فعلاً باید تو زندان صلاح مملکت فیش خسروان دارد من احساساتی میخواستم که حقی ناحق نشد خود دارید همه چی علیه حسابانه و خصوص با کین و نفرتی که از من داشته فقط بابا کلید من در باز شب گذاشتم؟ تو یه استراحتی بکن بعد میری. نه قربونت من اصلاً نه نیز. خوب نیست. یا تو یه چیزی با خوب بعد میری. آقا براتون چای بریزم؟ نه. قسته شدم از بس یه کنجی نشستم و چای خوردم. اگه میتونی یه دم برام بیا. الان براتون تون نعنا نوش نرنام میذارم. دسته درد نکنم. الو. الو سلام بابا. سلام بابا. بابا من مردم از نگرانی. از صبح چند بار زنگ زدم جواب ندادی. کجا بودی؟ همه الان از آگاهی برگشتی. آقای برای چی مگه خبری شده. سامان رو گرفتن. وای خدا رو شک چه خبر خوبی. کی گرفتنش؟ همین دیشب. پس بالاخره گیر افتاد. باید قصاصش کنن بابا. فعلا دارن تحقیقات میکنن. نمیشه نمیشه فکت که حتما اون قاتله. یعنی چی؟ خب اگه کار اون نیست پس برای چی فرار کرده بود؟ خب برای اینکه شرایط همه علیه اونه. یعنی چی؟ یعنی بهت گفتم به کسی دیگه مظنونم؟ من بدونم ولی نمیشه فکر کنم 100 درصد سامان که قاتله. باید صبر کرد. بابا میگم من فکر کنم چند روز دیگه بتونم بیام تهران یه چند تا آزمایش از اصل گرفتن اگه ایشالا جوابش بیاد هیچی نباشه دو سه روز دیگه пишеدی. خیلی خوبه. منم خوشحال میشم دلم براتون تنگ شده بابا. قربونت برم منم خیلی دلم برات تنگ شده بابا. بابا میگم با اجازتون من قطع کنم اصلا داره وول میخوار الان بیدارشه چیغ جیغ میکنم برو جام با واضح اش باش خدا حافظت هم ندازن با این فاکتور برای ماهی سر هست میبرید تپ همین فاکتور بار میزنی منم خودم بعد از رو میام کردیم تو اینجا میمونی کارت دارم شکر شاقا مرتضی الان با چه روی اومدی اینجا راست میگه چقدر برای پول گرفتی سامان که گرفتم اگه رقم موزایده رو به سامان نگفته بودین الان این اتفاق ها آقا پشما خدا بیامارز زنده بود سوارها بهش ما نکشته. اگه نه بود که تا الان قایم نمی‌شد. چه یه نفر میتونه کسی باشه؟ والتوماس به اینجا استفاده بشه بعد بزنه سافت‌کاره شو بکشه. چه روی داری شما؟ من اگه تو شما بودم دیگه پا مو اینجا نمی‌ذاشتم. امجا مردی. چی کار داری؟ کارگره الان شاکی هم. دست خودشون نیست. بلاخره هایی میفهمن. می سامان قاتل نیست. من میدونه. میدونم. چیو؟ اینکه سامان قاتل نیست. از کجا میدونی؟ یه دوستی دارم که یه چیزای راجب این اتفاق میدونه. یه مدرکی داره که نشون میده که پشمان کشته. اگه دلتونه خواد میتونم کمکتون کنم که, که نامزدتون رو نجات بدید. چرا نمیری میری به پلیس بگی؟ این که مدرک دستشه همینطوری کاری رو انجام نمیده. منظور چیه؟ ادمه گرفتاریه. میتونید کمکش کنید که از گرفتاری, گرفتاری در بیاد. اگه نمی خوش سامانه نجات بدید. میدونید که اگه نتونید ثابت بکنید که بیگناه حکمش چیه. اعدام. این دو من آدم گرفتاریه. باید کمکش کنید. آقا مرتضی، من همه کمک هم به سامان میکنم تا بی ثابت بشه. اما حاضر استم به کسی باش بدم. تجیبیدم پلیس کار خودشو بکنه. باش چیه؟ هم تو میدونی داری چی میگی؟ همه میفهمم. برای کار درس آموزش باشه میرم. زندان تفضی خواهرم از روانو خبر داری؟ خیلی دلم براش تنگ شد آراش تو بعد میذاشته خودش تصمیم بگیره که کنارت بمونه یا نه اینجوری که حق انتخابی ندهد چطوری کنارم بمونه زندگی اون با من به هیچ جا نمیرسه به آراش خیلی بده تو داری به جایی همه فکر میکنی و تصمیم میگیری اجازم نمیدی هیچ که بهت کمک کنه آبا تو که نمیخواستی رو بکشی میدونم قاسم از حقیقت اساسش نمیسر. از کجا میدونی؟ برو پیش رونا همیتشو برش تعریف کن اینجوری برای هر دوتون خیلی بهتر برو را. از وقتی اون قسمت رو باز کردیم توی اپ بره شکایت مردمی خدا شکمش که اون خیلی حل شدیم مدت من همه رو تونستم فرنایی از پسش برمیام فقط یکی دو موره پیش اومد که من نتونستم خیلی کار بکنم گفتم رهتر شما هم در جر جریع روشید سلام باید سلام باید سوشو باید من نمیشم این وقتیتون آزاد بود یه دقتی بهش بکنید بگید من چه کار بکنم سلام سلام س من فلاشه هم کنم تو کشب دوم یا سوم اینجا جا گذاشتم. میشه دارتو کنیم. بله هاچم. مطمئن اینجا گذاشتم. بله. اینجا فلاش نیستم. شما با دنشی ما خودم پیداش میکنم. خودش پس امروز محبت میکنین اونا رو دنگاه کنین بهشون بگید من چه کار بکنم حواستون از خواه مذری چند روزش پیشم باها حرف زدم. بفهمی. کار شرکت چطوره؟ خیلی خوبه اصلا. فکرش هم نمی‌کردم. وقتی میگی خوبه یعنی عالیه. آرش چطور پسدی؟ چطور مگه؟ خوب بالاخره قرار دامادم بشه. خواستم ببینم چه جور آدمی آخه شما که خودتون دیدینش با شرف زدین الان بالاخره شما دارین تو اون شرکت باهاش کار میکنین میخواستم نظری تو رو هم بدونم حالا منم زیاد ندیدمش کم میاد دفتر یعنیش. یعنی یعنی به اونجا سر نمیزنه چرا ولی کارش بیشتر برنامه نویسی و راهندازی اپ بوده الان دیگه بقیه کارو بیشتر به عهده رامین و روناه بالاخره باید بیاد اونجا یا نه, نه. رابطه‌اش با رونا خوبه شما چه سوالایی می‌پرسیم بابا خب معلومه که خوبه الان یه مدتی رونا حالش خوش است و همش تو فکره با اینکه کارشون خوب شده باید خوشحال باشن حرف خواستگاری و عروسی و جشن و این چیزها باشه ولی اصلا از این حرفا نمیزنن چیزی شده حالا من که چیز خاصی ندیدم بایجون من بعد یه زنگ به مامانم بزنم منتظرم اگه اجازه بدید من برایم باشم دارم ببینیم یه شب همه به موقع میان دوره همشان بخوریم فعلا که مثل لشکر شکست خورده میمونیم رامین تو کارخونه هست ندا میاد رونا باهاش نمیاد معلوم نیست چرا با هم نمیده خب ندا این کارش زودتر تنوشوت زودتر آمد حتما رونا کار داشته که مونده الان نشستم تو حیات چند کلمه ای با ندا حرف بزنم و اون رفت راجبه چی حرف میزدی؟ در مورد و رونا زایم به مادر ادایش بگو بیان برای مری خواسه‌گاری. الان مگه خودت عجله نداشتی اصرار نداشتی که میام خواسه‌گاری؟ نه خب الان که دارم شام درست میکنم کارم تموم شد خودم زنگ می‌زنم. باش کارت که تموم شد حتما زنگ بزنم نه اون اول که اینقدر مخالفت میکردی نه به الان که انقدر عجله داری نمیفهمم خب من یه قولی بهش دادم سر قولم هم هستم. پسرام که خودش رو نشون داد دیگه. کارش درسته. و همش یاله. بخواه شما بینه شش ماه وقت داده بودی، حالا باید ببینیم چی میشه قرار چی بشه؟ خب کاره دیگه، اولو پایین داره تو خودت اصرار داشتی یا عجله داشتی، حالا میگی صبر کنیم؟ من میگم یک خوره صحب کنیم بد نیست مسئله چیه فریده؟ چی رو داری از من مخفی میکنی؟ هیچی والا من فقط میگم عجله نکنیم مسئله عجله نیست مسئله نامهرم بودن منه یعنی چی؟ یعنی که من تو این خونه غریبه هم دختر من چند وقته حالش بده اسم دیگه از آرش نمیاره تا هم که داری منو بازی میدی تجمه کنی نمیفهمم خدیده یا به من میگی چی شده یا خودم میرم سراغه این بسره هم تلفن بزن من به خودش از دهن خودش بشتم که چرا این کارو باز که اینقدر راحت مرد که براش کسی که اینقدر تو فکر کردی من جور میریستم تو با اعصاب روان دخترم بازی کنی چرا با رونا دعوا کردی تو که خودت تو میکشتی براش آگه نگران من بودی میگفتی ناراحت چیکار کردی گفتم دیگه اسمو مطرح نکن بی‌تکلفی تو از همه چی بدتر تو صلاح تو آرشو فرومشونی کُلّاً برای همش گذاشتیش کنا دیدی که پدرش چیکار بلدام بود چیکار کنم میچارتونی تو آه در جریان بود زل زدم به آسمون کم دودی شد با صدای زنگ در یه و بارون بارید دستای خون پر از گل داوودی شد ماه از راه رسید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 نازنینی ایش آخریم تیکه ایم جورچینی ایش مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه ایم جورچینی ایش